شانز قونیه شوال 643 بی توقف تسبیح می‌گرداند انگشتانش از فرط تفکر چین افتاده بر پیشانیش تک و تنها نشسته مولانای عزیز خورشید غروب کرده این ساعتی است که فرشتهها، با انسانها در میآمیزند مرزهای حقیقت و خیال محو می شود همانطور که سرپا ایستاده بودم و در سکوت تماشایش میکردم ناگهان به عالم دیگر کشیده شدم به کشف و شهود پرداختم حالت مولانا را در سالهای بعد دیدم پیرتر و لاغرتر و غمگین بود. اما با حیبت و عظمت بیشتری نشسته بود در همان نقطه. زیر همان نور زرد اصلی. جبهی به رنگ سبز سیر بر بود. بزرگوارانه به اطرافش مینگریست. اما در دلش دردی آرام نشدنی داشت. نبود مرا مثل زخمی بر وجودش حمل میکرد. در آن لحظه دو چیز فهمیدم. اولین اینکه مولانا در این خانه پاپسن میگذارد و تا آخر عمر در این شهر میماند. ماند. دوم اینکه پس از رفتن من زخمی که بر اثر نبودنم باز میشود شود بسته نخواهد شد. چشمهایم پر اشک شد. صدایش از عالم دیگر جدایم کرد. شمس، حالت خوب است؟ سرپا نیست، بیا بنشین. به نظر می میرسی. به سختی لبخندی زدم. اما سنگینه حرفهایی که میخواستم بزنم مثل سنگ آسیا از گردنم آویزان ماند. صدایم گرفته بود. گفتم راستش حالم خیلی خوب نیست خیلی تشنه هم شده اما در این خانه چیزی نیست که تشنگیم را فرو بنشاند مولانا گفت در آن صورت میروم از کررا میپرسم هر چه دلت میخواهد بگو برایت آماده کنم. گفتم نه نمیخواهم چیزی که من لازم دارم در مطبخ نیست که در میخانه است امشب دلم میخواهد مست کنم نگرانی را در چهره مولانا دیدم به نظر میرسید گیج شده گفتم کوزه را به جای آن که در مطبخ پر کنی در میخانه پر کن عالم بزرگ با تردید پرسید یعنی چه میخواهی برایت شراب بخرم؟ گفتم: همینطور است اما فقط برای من نه اگر بروی و برای هر دو دومان شراب بخری خیلی مقبول می شود. دو کوزه کافی است یکی برای تو یکی برای من اما یک خواهش هم دارم به میخانه که رفتی با عجله کوزه ها را برندا. کمی آنجا سرت را گرم کن، با آدمها صحبت کن، من اینجا منتظرت میمانم، لازم نیست عجله کنی. مولانا به صورتم نگاه کرد، در چشمانش هم اسیان بود، هم تشویش. در آن لحظه یاد شاگرد موقرمز در بغداد افتادم که میخواست رفیقم باشد. از بس در این فکر بود که دیگران درباره اش چه فکری می کنند، فرصت پیدا نکرد در دریای تصوف اوتور شود. آیا مولوی هم از ترس از دست دادن اعتبارش سرف نظر خواهد کرد از پیش رفتن در این راه؟ اما مولانا پس از لحظه ای تردید بلند شد. سرش را به این معنا که خیلی خوب باشد تکان داد و گفت تا این سن رسیده نه به میخانه رفتهام نه قطره شراب در دهان گذاشته هم. به نظرم نوشیدن شراب صحیح نیست. اما به تو کاملا اعتماد دارم. چون باور دارم که بیهوده چون این چیزی از من نمیخواهی لابد حقیقتی هست که می خواهی ببینمش. به خاطر گل روی تو، ای دوست، به جایی که گفتی می روم. آن شراب را میگیرم و میآورم، حتی اگر این کار بر نفسم سنگینی کند. حتی اگر برای پاهایم دشوار باشد و حتی اگر بر اعتبارم لکه بیندازد. بعد خداحافظی کرد و رفت. همین که از اتاق بیرون رفت، زانو زدم، سجده کردم. تسبیحی را که مولوی جا گذاشته بود، برداشتم. بارها و بارها به درگاه پروردگار شکر کردم که چنین رفیق خارق ای نصیبم کرده. مولانا رودی خروشان است، رودی خروشان و درخشنده که درجا نمیزند. به روی همه انسانها و همه هستی آغوش می درباره در باره هیچکس پیش داوری نمی کند. همیشه کنجکاوس بداند در آن فراسوها چه چی چیزهایی هست و بعد کشفشان کند. تنها وظیفه من این است، که صد فراروی آن نهر را ویران کنم همین آرزو می کنم تا آخر عمر از مستی عشق الهی به هوش نیاید